اللهم افتر ها این مشتری مرحوم در شما که در حالتی کلمات مرحوم استرابادی بود و هل شد که ایشان کلیه یه اصول رو در یک تقسیمی هم را زیده سآل و از حجیت الگاه کردن شد که بعد از مسئله بکشان رو به حسن همون هستی بکشان بخونیم تا معلوم بشه آیا مطلب درون حدودی سی ایشان پردنید یا نه یکیش بحث ترکیحات بود که به تردیر ایشان ترکیحات زنیه وجود زنیه و عرض شد که این ترکیحات در کلمات مثل احلامه آمده و اصلش در کتب اهل سنت در این مطلبیش که ایشون پرمودن این جای برس نیست خب همینطوره یعنی این تحجیحات در کلمات اهل سنت آمده و حتی بعضیاش هم که ایشون نهار کرده مثل ناقل و مقدر رو علمای اهل سنت رو ذکر کرد ابوها شمونگیران و خب قبلا هم در میان کلمات ما هم و از کنیم این یک مقدر درست هم هست که علامه ایتا اما این معناش با داری نکرده نه تخلیز دینه نه معناش این است که مثلا این وجوه, وجوه باطلیست و مخالط فکریست با متواطر بگاهیات با روایات متواطر از احره به حسان وقت نشه اولا خب علامه شاید نظر مبارک این بوده نظر خیلی که ایشون خود جده خبر واحد قبول داشتن و از من شما ایشون بخص اصولیشون یادم که ایشون دارن که دارن اما حالا تمسط به خوصه نبر شده آیا آیه, آیه نبر رو قبول کردن آیه رو قبول کردن جده خبر حد قبول کردن و اعتبادا این وجودی که اقوردن این رو سبب رجحان بود هر حجت باشه همدو خبر و روشان به این وجود باشه اختیار این مقانی اولا اینکه که علامه از اونها بوده درست اما این که آیا واقعا علامه تقلیدن ورده یا اعتقادن بوده خب شد اعتقاد است به این محلت ظاهرش اینطوره این چوره مناقصی هم چیز قطعی خلاف به ظاهر و خلاف خل و قطعی المسلام و قطعی القصاد که نیستیم مثلا ایشون فکر خوبه که اگر بتوانیم در روش حجت ترجیح به جهتی دید دید از تخریب تخریب تخریب حضور بدید بهتره از اینکه مثلا تخییر وارد بشیم یا تفاهم وارد بشیم به نظر یکیش مرجع باشه از تخییر با تخییر که در ضمن هر طور مخالفینی ترجیح میدی اینکه بگید مشکل خاصی نداره یعنی نه تخریب دین لازم میاد نه لازم میاد که این ترجیحات رو الله کپی کرده در اهل و ممکن است اینکون اعتقال شده کرده شزایده شده من میشه اعتقاد پیدا کرده این راه راه درستی است برای ترجیح این دو تا چه مشکل خاصی داره یعنی انصافا به ذهن ما میاد که این راه رو که مرمون ملا محمد عمید استرابادی برای تنه برای اصول یا اصولی بزرگ یا علماء بزرگی هم میسه مرمون علمه و به عنوانی که از اونها عهد شده این راه راه درستی به نظر نمیاد. این به لحظیم ایشان مثلا خود ایشان خیماغه از دلیلی که از این فوائد خبر سره و حدیت میدونه خب همین مشکلات پیش میگن غایت و ماغنات شما یک مبنه خواهد زد تا آراز میگیریم علامه مبنه نه این خط انقلاف شریعت نه اونی که خط انقلاف شریعته چه نطفیه خواستی خانوش ما خبر سقه رو چونه یه پس بیدار چونه یه پس بیداره و که اینجای پرکیوب بعد از روایاتی رو که بعدها ادهی از ما ما هم در خود خبر سقه به او تمثل کردن ایشون به همون رو تمثل می کنن که این شبه در بحثیت مجید خبر این شبه اگر یادن باشد کتابیشون بکنی از ستار تا وادل مدنی علاقی این به به نظر ما اشکالی توجیدی نمی کنه و مزاحم به که از کردیم و که اوضعیشان تا حدی محلومه ایشون به زمان خودشه که چهارست سال قبل بوده تحجیات و اصولی ما قرد نیامده تمسک از ها در کتب اصولی ما در بحث تا عوض امدش به را تا مرمه اما تا اون زمان اینقدر مطارق نبوده یعنی اینقدر مشارف نبوده که به این روایت تمثل بکنن در بابطه آرز این وجودی هم که ایشون از علامه نقل کرده که خونده شد الان در کتب و اصول ما نمیاد هست این مطلب الان این طور در بحث تا در بعض از و اصول بردشان هم هست اصول مفصل اما الان دیگه در کتب و اصول ما نمیاد این بحث وارد نشده اصحاب عمل نکردن، اونم نه این کارو چون عامه گفتن اونم هو اعتقاد علامه ربون که روی اعتقاد آمه ربون نکردن روی اعتقاد و هیچ کدومش منشعی نیمشه که انسان این تعبیر شدید رو بکار دارد مضاقا که من دیروز این تحریف روزی به تاریخ رزی گفتم ما حصولا واقع نظر از این جهت میتونیم هر دو کلام رو تحلیل تاریخی بکنیم یعنی هم میتونیم کلام و رو حتی از دیدگاه و منظر عامه تحقیل تاریخی بکنید که به این نتیجه رسیدن غیشه رو پیدا بکنیم غیشه هاش رو در پیدا بکنید و هم کلام علامه رحمه الله که ایشان چرا به این نتیجه رسیده و چرا قبل از به این نتیجه نرسیده بودن چرا آیان بعد از خود مرگو محدث من منحج کار رو عرض کردن اینا یه مساله نیست که خیلی راحت الان میتونید ما به سار اونها تحلیل داشته باشیم ریشاهات رو پیدا کنیم چی چیزی نیست که اصلا بسته در مقابل رو قرار بگیم یا آمه این رو گفتن علاقه این رو گفتن پس ایشون اون رو نه این تحریف برای قضایی هم کافی نیست که انشاءالله با این مساله دیگه هم توضیحی داده میشین از مطالب دیگه که ایشون خیلی روش حساسیت بکرد داده مرموم ملا محمد امین استرابادی روی اصحارت و براعت شما حسین در خلاق این بحث متعرض بحث حکم عقل هم میشه اولا این روشن بشه که در عده اصفاتو وقتی صحبت حکم عقل میکنند کتاب سنت و, و عقل و اجماع عقلو به براعت یعنی مصداق بارزش رو براعت استساق بیرستن خب ایشان اصلا مشکل کار ایشان اینه که نه اینکه مشکل واقعا خب این قدمی رو که ایشان برداشته یک مطالبی رو دیده و به نظرش مشکل آمده اینطور به اصطلاح تون شده نه باید تون مثلا در این صفحه سی از یستوسی می‌زنم. حالا وقتی که این می‌شکیم، از این نرمالشون یا گرفتی که می‌گم من اعجب العجائب آدایی، آن نشیح اینجا کتاب ذکر را آدرس داده صفحه 52 ذکر، لکن جدیه که، لکن نکد من مراجعه بکنم کیونه؟ مطلب چیه؟ ایشون از کتاب زکرا منعجاب الاجائب انشهی کنشهی به همون ذکر فی کتاب زکرا انعصالت البرای توفید القطع و یعین مصیبتی دیم کلمه قطع توفید القطع و یعین بعد ایشان حمله می ما من انعالا توفید القطع علام مذهب اهل الهند و همه اون نمت تقل و واقع اصلا امه حکم قطعی الله تعالی فعتبر و یا قول افثار خب چطوریشون که مفیق قطع و من امزه کنم یا اون کتاب روزه که شاب جهیدش باشم شاب قدیمشیچ من هر جهیدشون دارم نه تو مراسی اروپمی پیشم حالا مرمومه اول واقعا خب این عبارت هم انصافا کنگینه توی یعنی. جهید قطع اونی که الان در اصول ما تنقیب شده به این صورتی که اصول عملی مفید قطع هست به لحاظ وظیفه عملی نه به لحاظ واقع خوده قطع بکنیم حساس برای مفادشی در قطع هم در باقی نداریم این نیست مفادشی اساس برای قطع هم اینه که وظیفه ما قطع هم اینجوری که انجام انجام داریم عقوبت نداریم دو تا بخش. یعنی در اصول اون که وزیفه هست اون قطعیه اما اینکه این واقعه نه ایشون احتمالشون میگه من انهو لاتوید و دووند الالامه و هم انهو لم تخل و واقعه هستم. من میشونم با اساس برای بگم واقعی نیست الان ما از خواب ما هم کنی چیز رو میمیگم بله این رو از اهل سنت میگفتن که آن یک توضیح عرض اما الان علمای ما دقت بکنید نمیگن شما قطع دارید که حکم واقعی نیست قعد دارید به اینکه اگر عمل نکردید به این چیز مثلا, مثلا سیگار کشیدن مثال معروف قعد دارید که عقوبت ندارید چون جرشین بدی می‌گند به رأقبلاغه آقا. قعد ایشون مراد اینه نه شما قعد دارین واقعی نیست در واقع حلاله، حرام نیست. حکمی نداره. ایشان اشکالی سیندر تفضیب و من حکمی نفقتی. این بیشون نسی که اساس و بران کشف از واقع زده. زادرش اینطوره طوره. از من چون کتاب ذکرا نشد مراجعه بکنن یعنی مثل اون تبایدون مسلیم مورنس و کلام نفتن نسی بگه حلایه حاله درقت بکنید مثلا ایشون اگر واقعا کسی از علمای ما بگه ما یقین داریم به نفی حکم واقعی خب این با مبانی اصحاب ما این نمی ساته خب نمی ساته خب برای خب همون حکم ظاهریش هم محل کلامه حالا من اگر ببرم برد, برد, برد, برد. چون رو نز حکم ظاهریش محل کلامه به این جهت محل کلامه که نفیه حکمی باشه آره ما این شبه ازمی که اصلا مفاد برایت چیه آیا نفیه حکمه یا نه حالا چون مخابی مراد دخونم یه مقداری که دیگه پیروز که خوندیم راجع به مطالبی که ایشون در کل رو بود دیگه حالا اونو نمی کنیم کن من فعلا این قسمت رو به از اول خود کتاب چون این فائدهی داره از صفحه سی و هست یک فائدهی شروع میکنه که تقریبا تو این فائده هم درمی که اون قد عقلی که میگن اینکه عقل و ای که اجماع اخوالی ها روی این عقل و اجماع خیلی مال دادن یعنی تمام اساس کار ایشان که اون عقل و اجماع رو از بین ببره چون در کلمات نخ نخی از کلمات فقه ها رو برده یکیش مرحوم شهید سانی در شدونه چه فیبرد کتاب الفقیه شاید یاد توی شهر روانه هستی این عباس شهر روانه هست خود رو مرحوم شهید سانی در شهر روانه درباب قضا متعرض عدله احکام شده که آزی که باید مشهد باشه باید اینجور چیزا رو بدونه کتاب و سنت و اجماع مثلا ممنون اله اجماع و خلاف خلاف استلاحا ما امروزه در دنیا عرب بشینگر فقه مقارن وقتی بوستن فقه خلاف خلاف که اختلافی بودن این بفهمه که کجا مسائل خلافی انیع و انمایی یختیده لا یخالف حال اجماع بدونه که این مسئله اجماع بر خلافش نیست اون وقت دلال اطول عقل من محل شاده نخوندن عباسیشان طولانیه و دلال اطول عقل مند استثاب و براعت الاصلیه چون من از سلام اول بحث آن هستمیاتون هست من در خلال این بحث که ایشون میخواد مرمون شهرت بکنم در اخباری ها دو مسئله دیگه تنقیه بشه اینکه میگن از دلیه عربه چهارتاسی کم عربه این هر این چی یکی عربه قادر مدازمه بکنش بشه. این مناسبه یه مقدار خود مرمون الله محمد امین استعابادی عبارات اصولی خواهار آورده که روشن میکنه عقل وقتی نیش وقتی ما با مثلا موافق نیستیم با قفل عقل مرادش همین براحت استثابه دقیق سهموندی؟ مراد ایشان و دلالت از یه عبارات بازم ما این عبارات می‌خونیم، این عبارات شهید سانیست و العقل من استصال و براحت الاصلیه و بیره ما داخلتان که اصول. اینا جزء جزا اصوله از اصول رو در فتح بیسرهش این طور زمین الاصول مایع رکبیه از الاحکام من الامر والنحیه والعموم والخصوص والاستراب والتحقید والا اجمال والبیان و فیره و عقلم بخش عقلش استثباه و برایت عقلیه اصلیه و عقل که در اصول به حکم عقل هست خاصی این مراد این ها از عقل یواشواش که مثلا مثلا این کتاب و سنت و عقل و روشن میشه بله مرحوم این عبارت بقیه بقیه, بقیه چیزایی که هستی که من نمیخوام بخونم که رفتی نذاره بقیه, بقیه مثالی مثلا ایشون از کسانی که در وحث در اینجا صحبت دارن در صحبت دارن در کلام از علامه علمی در مبادع مبادع رسول الا علم رسول از مبادی علامه نرمی کردن اونم در شرائط اشتهاد که مثلا چیه آیاتی کتاب این هم خیلی که در اشتغال چیه هست دارم من اون قسمت رو که متعرضه میشم اجماع هست کتاب هست این کنی صد آیه من همون دمان معروفه به روخ همسمه و ان یکمونه آل من به اجماع همیشه که که آل من آل به کذا و هنیفون و آرف هم به براعت الاصلیه یکی از شخون یعنی مشهد مخواد فرید بشه مشهد باشه عالم به شرائط براعت الاصلیه و لابود هنیفون و آلم هم به شعات حد و برخان موردشون حد و برخان همون منطقه منطقه هم بلد بشه. من سفرنم از که من متن معمولا میگه از زمان قاضلی وارد علوم حوزه شد تا من تب سفر انجام اولوم فلسفه حساب صاد میشود در چیز با حوزای اجتماعی ندارد. از اولین سفرشی شنبه هفته که مثلا طلاب لغت حوزای اجتماعی هم منطق تب بخونم اول نبود. ولی امروز در یکون آنها میشوند از هم مثلا خود سید مرتضای شیخ مفید شیخ دوستی استلالات منطقی یا مطالعه منطقی ندارند. این روشن بشه. این زمان ندیگه کمانه علامه خود مرگون محقق سرالی شهر شنسی داره من سابقا دیم چاپ مست نیزون رو دیگر چاپ نیزون رو شده بعد ایشون این عبارت از مبادی و الوسول در سفیه چهر شهر آنه بعد بعد از اون در همون سفیه چهر شهر عبارت از تحضیب و دیو درستم هم علامه سه ته دور اصول رو نوشته مبادی تهذیب و نهایه به ترتیب در تهذیب در ترتیب چنو پندی و خامس و ها می بخنم بقیه چه خودتون مراجعه باستن و خامس و ها هم یعرفه از اللفل عقل چیه کلبقا از الاسریه ولی استثال ها بگیره ما روزه؟ یعنی اون اثر عقل رو برات اصلی و استثباب گرفتن و بعد به اواخر بحثایی که ایشون مطرح شدن غیر واردون بحث نمی‌شیم و این در کتاب تنبیه بعد از مطالبی که ایشان در اینجا متعرضه شدن در صفحه 53 به بعد مرمون محقه دلوی داری علامه در اوائل کتاب محتوان معتبر ایشان چاک شده از ناقص بسیار کتاب و محیقیه معتبر محقق که ناقص امساقه بسیار بسیار فوائد خوبی داره با ایجازش خود علاقه کتاب دقیقی در اوائل معتبر مثل بعد از کتاب دیگه یکمونزهان بود یه دوره که این مختصر کشترده چند ای اصول داره در همون لحظه اصولش اینطور داره ببینید الفصل سالس که این مستند داره ما افکار را از کجا می‌گیریم؟ بعد و از یه وحیه اندنا خمیسه الکتاب و سنه ول اجماع و دلیل و لعب ول استثاب رو در مقابل در ارمو گرفته من قطعه شابهه تاریسی این کلمه عرض در اصطلاحات و غنبه ما چیگی روی مطلب شده و دلیل و لعب ول حالا بعد شروع میکنه راجع به بحث کتاب سنت تا میرسه به نیجا بحث خبر رو متعرفش شده که میخونیم بحث خبر شتیفه بعد و اما دلیل به عقل اگر یاد مبارکه باشه عقل رو در اینجا جسته بگرفتن. یکی مسئله یه گرفتن یکی حسن خوب گرفتن یکی اول ملازمات نیست مقدمه واجب ایشو می که دلیل حقی دو قسمه احد ما همان مایتوهب و قفی حلال که از آن حصولی ما به غیر, غیر مستقلات احکام هم عقیه غیر مستبله. ایشون تعلیمشونی که مایتوهب و قفی حلال یعنی احکام عقیق که باید یه خطابی باشه در دمیمه خطاب بکنه عقیق الان ما هم, هم ها میگیم احکام عقیقه غیر مستقلات غیر مستقلات عقیقه بزن بعد ایشون سه تا کردن اول اول لحن خطاب از ثانی خط و کتاب از سالس و دلیل و خطاب. حالا این اصطلاح لحن کتاب، این لحن کتاب شبیه یعنی من اگر یاد باشه توی اول بحث مفهوم تگه بحث رو یک سال میشه شد و این یاد آروم عبارتی رو از احکام آمدی خوندیم احکام آمدی در این بحثی ما بحث مفهوم رو در اصول چیز رو بیاریم یه بحثی خودمون ترتیب افغاظ اصول آمدی در اصولت بخصود دلالت دوی جوره دلالت منظوم غیر منظوم اسمشون منظوم غیر منظوم دلالت منظوم اونی که به لفظ است و قواهد لفظی دلالت. دلالت غیر منظوم چیزی که چیز عقیق تو میاد این اطلاح اونجا این رو دلالت غیر منظور رو چار تا گرد یکی افتضاع یکی تنبیه یکی اشاره یکی هم مفهوم این چهارتار از دلات قیر منظوم گره این بحثی که ایشون داره لحنال خطاب و فهر خطاب و چهاری خطاب همونات اما سه شده گرفته نه چهارتار این دلیل خطاب همون به اصطلاح اصطلاحاً از محکومه لحنال خطاب محکوم و معافقته اولویت این مدار فهر خطاب فهر خطاب ایشون گفتی یه دون بلهی به پنگیه تنبیه نیست تنبیه چیزیدیست این همون اولادیتی لحظ و شبیه دلالت اقتضاست یعنی به اصلاح اقتضا میکنه کنه مثلا ای این گفت فرصاله قریه نه اهلال این اقتضاق می کنه چیزی در حرز باشه ایشون در حقیقت از اخسام اون دلالت غیرمنظوم منظوم و تحبیر آمدی سنیم دو تا صورت یکی اکسون آورده یکی هم مفهوم مفهوم هم با به باسن محبوم محبوم و موافقه مفهوم به در صابه مفهوم موافقت رو فهل کتاب میگفتن وقتی مفهوم مخالف از لحن لغت کتاب جایی دلیل رو کتابی دیدی به کتاب پس ایشان یک قسم رو گرفته سه تصادف آورده که این سبب در حقیقت این طور هم مقروم و محافظت مقروم و مخالفت و اقتضا مثل واسه الاخرین واسه الاخرین اقتضا میکنه یه چیز در طبیه باشه این روشون عقل گرفتن این ستارو میخوام تثیر روشن نیشی که وقتی میگن یعنی عقل مرادشون چیه شبیه کلام آقای کوییتون گفتن مثلا ملازمات احکام غیر مستقله عقلیه بل عردس مستانی ماینتر دول عقل به دلالت هره. اونه که تنهایی تنهایی اونه مستقلات اقتیش که کرده دور الان در ستاب های ما مستقلات اقتیش مستقلات اقتیش احکام اقتیش اینکه به تنهایی دلالت این به زن مقدمه شرعی نداره اگر احتیاج به زن مقدمه شرعی شد خیر مستقلاته احتیاج به زن مقدمه شرعی ن که وجود در و ما وجودان کردن او قب هم و لذت او حسن کل انصاف و سر اینها در آمده این هم بحث کل به راه مهتن به شهر این سن شوم مظلومه سنه کل وقت من که ما قد یکون قد این کشبی و قبعه چیز محنم پس مردم محفظ مرادش از استثاب عقل اینا گرفته بعد در استثاب که میرسه رو هم سر میکنه حال عقل به حوات سر برای عزیز افریه دو و حال شرم و که مثلا اینجور باشه ای... ساله سرس ها به حال شم بله دوبا دوباره شود من حواستم پرشد سانی همی عدم قد مددیب و علاکه دار که ادماندری درید و, و لعظم شبیه باز براعت نه براعت حسنیه شبیه اون ایشون سه تا هم استثاب گرسنن این خلاصه بحثه که ایشان از بزرگان در یک جرد که مراد از عقل که در کلمات اصولین آمده مراد اینه ارز کنیم که ایشان خوب حمله کردن خود اخباریها ها به براعت و براعت به همیدیات هستم در من یه توضیحی خدمت سلاجیمی مثل عرض بکنم چون مطالبی هستان خیلی تشتیب نمیشتو شده الان من از الان شروع میکنم که بعدی شد حالی کشستن رو باشن. الان متعارف در حوضه های ما دو تا برایت متعارف اینه که بینیشنان تر روزشتن یکی برایت عقلی که مستند است سخوه پیقا بلا بیان و در مقابل او حق و طاعد مفرح این میشه یکی. یکی هم برآمد شرعی به اصطلاح خودش که مستند است به حدیث راه طوسان امتی ما دارای علامه این الان مورد بحث نیست در کتاب‌های درسی نجاتیون بود که پایه‌ در بحث به اصطلاح شکه در چی اون معروف سلائی در اهل عقل استقلال اقتصادی استون مثلا میگه در اینجا برای عقبه شرقی میشه عقبه جنوبی نمی یا الان حضور ذهنا را ارثا حضورش که این بحث الان مطرح شده این سلسله بحث الان در کتاب مرحوم ملا محمد امین استرابازی نیست از اصول دین و ملال مستند بر عقبه جنوبی می اما بر عقبه شرقی میشه ادده هم به عکس افتن برای از شرعی جال میمیشه برای میشه ادده هم سعی کردن این رو تحقیل تاریشی کنن مسئله مسئله قبطه اقاب بلا بیان که مسئله قبطه اقاب بلا بیان تا قبل از مرحوم به اصطلاح وحید بهبهانی مطرح نبوده در کلمات حلوان مطرح نبوده در کلمات شیخ توسی مطرح نبوده این مطرحی بوده که بهبهانی وحی قبله اقاق بلا بیان بعضی هم سر کردن نه مثلا اون براغتی در کلمات شیخ در برجان همون قبله اقاق بلا بیان. اصلا که چون این مقداری مباحث با هم خلق شده انصافش هم خالی از خلق نیست و سر روش هم یه مقدار به برمید این برمیده این به مطلبی رو که مولا محمد انین استراغوی داره که اختلاف مبناس انصافا محسره یعنی دین ما رحل سنت اختلاق مرنا محسره و این مدار تنگیه هاییشان در اینقدر بازگفت سبب شد که وحیل بهبانی از واقع قبعه بیان مارد بشه که الان توضیحش رو ارز این بحث اصولا من ارز کردم از زمان صحابه محسر شد ما عناوین جدیدی داشتیم که اینها مخصون زمان عمر که اینها حکمش نیامده بود اینه که کرده اینا صحابه جمع میشدن در همه عوائه مخصوصای به اومده یک مجموعه مج... مجلس مشارفی داشت 60 نقل بودن 15 از مهاجرین 15 تا از انصار با اونها مشارف میکرد بین خود صحابه مطرح میشد و اگاهی به نتیجه نمیگسیدن این تشکیل اساس البرایه از همون جا در واقع شروع شد هم اساس برایه هم استصحابه هم قیاس اینها در حقیقت از همون زمان صحابه ش هم مسئله اجماع شفتش هم یک مقدمه مشترک داشت اون مقدمه دید که این حکم نیامده نه, نه در کتاب آمده و نه در سنت برای صحابه که با رسول الله بودن خیلی راحت بود که بگن این حکم در کتاب سنت نیست مخصوصا که عمر در خیلی از مسائل در کتاب اهل سنت این هم ایو برای عمر نیزنش که هم یعنی میهم در الرساله خودش که معรัส از اولین کتاب اصوله شرح میده که یکی از عمر مسئله کوسی جوابی داد بعد یه اعرابی بلند شد گفت که من این مطلب رو از بودن که پیغمبر اینجور گفتن خلاف قول عمر عمر هم گفت به همون حکمی که پیغمبر کردن عمل بشه علما رو بزنین به هم یعنی به نظر ها مشکل نداره که مثلا عمر که از مکه با پیغمبر بود و تازه پدرخانا پیغمبر بودن اما پیغمبر برن بوده مذهبی رو بلد نباشید احادیثی بلند بشه که من این مطلب از چه اونا راه یه خوب دقت بکنید خود شافعی هم خیلی تاکید می‌کنه اصلا اگه از مواد عجیبی نه که شابه شده یک صفحه از این حدیث تاکید می‌کنه که اون زرد به عمر کریم با اینکه خوب می‌کرده ولاتین شده که هم بر سرندان درس برداشت هرسال شافعی تا شده واجبه تازه خدیراتم درس خدیراتم نمی‌شه <تصحیح> ماها واسه ما مشكله برای اونها خیلی مشکل نداره که عمروی اعرابی برگرده در فهمه مثلا این یه واضحیتی بوده اون وقت در جایی که حکم نبوده اینا تشبسات مختلفه داشتن من کلاراً عرض کردن فرص مثلا همین داماد عمر شوهر خواهر عمر این اولیتی که حد شراب خرم و جایی شد همونه داماد عمر این شراب کرده بود آوردنش که که گفتن که حرامو گفت خیر ما اشغال ندارم من مؤمنم شیعهی مولا دونو اهل لدین چی آمنو اهل ما آیه این که این گفته قرآن گفته اشغال اگر متقی بود هر خود خورد اشغال را روشن خود درصفه این چون متقی اشغال ندارم این آیه تناسب کرد خب بحثی شد بین صحابه شاور که گفت مثلا چند تو هر کسی یه صحبتی رو مطرح کرده به گفتن ولش چون آیه نداریم روایت هم نداریم خوب دفت بکنیم نه آلیی در این هست نه روایتی از پیغمبر خوب صحابه هم موجود بودن این رو بکنیم اینها به ذهنشون می که در اینجا چیزی نی نه کتاب آمده نسونده ماعناروسی که مشورت می‌کردن عاقبت الامر سینند به مثلی که امین ها می‌کردن که امین رو مهمی فروندن به این که این خورخند نزدیک است به حالت اون و بدزبانی و قرض پس یه حد قرض زده شده 80 تا تازوانه همو شا... شلاق زام شده رو... شوهر خواهر و عمادامد و شوهر خواهرش رو 80 تا تازوانه شلاق دادن این ثابت شد یعنی بوند جسر شوران کش که در شهر بخرم 80 تا یانه دقیقاً این تحلیل اصولیش اینه در حدی از موارد عمر در اینجا مثلا گفت ما مردی نره همین ایران رو که گرفتن من تجزیهات به صادرن کردم فتوحاتی که زمان پیرامان شد به استثنای هیبه مثلا در زمان پیرامان در بجاز زمین ارزش اقتصادی نداشت من چند بار عرض کردم مثل الان نیست که الان زمینی که از بحثایی مهمه که از ارکان مهم اقتصاد فیلن زمین دیگه موقعه آدمیسیون داری کتاب که الان زیر بنای اقتصاد کابیتالیسمه اقتصاد سرمایه دارید ارکان چیز سه چیز میبونن زمین است و سرمایه است و کار زمین نه طبیعت طبیعت همی ای زمین یکی از اصاس ارکان اساسی طبیعت ای که از ارکان اقتصاده در جهان عرب در جهان جاهد در جهان اسلام در اون درستان به استثناء خیبر که ازش محدود اقتصادی داشتن چون مکه که هستن وادی غیر بود یا که خادی بود مدینه هم حد زراعت در نوزه که یک فرق با چاه با آب چاه بتونه به زمین 7000 نسید 23000 نسید با چاه و مثلا برگه اونا بیاره که آب از چاه بکشن و از زمین آب بدن زمین ارزش اقتصادی نداشت تا عراق رو گرفتن زبان آمد. وقتی عراق رو گرفتن خب نه از اولش بحث اون روزها هر کشفگاه درخت خرما بود این یه ارزش اقتصادی زمین اون وقت روشن شد که زمین یعنی چی و اول که فراوان جغرافیا میگی مثل مکه و مدینه الان هم ببین شما در در مستند عربستان سعودی کلا نه وجود نداره در کل عربستان سعودی که دو برابر هم مساحتش کلا نه هی وجود نداره به خلاف عراق است عراق از اون خراسان قدیم نیست خراسان کوچیک‌تر کل اراق. دو تا تو سناره اروپا شمال شرق رو شه خب این زمین مخرج شد یه عامل اقتصادی مهمی بود درآمد مهمی بود از اون عراق بعدن گفتن ما از دست سنت نداریم یک ای مثل مسئله گفتن یه تقسیم کردن بری جنگل یا از جنوب به دیدی و خدایا میمیشه که نمیاد میمیشه زمینه چیزی میشه بکن مثلا صد هزار نفر مسلمان شرکت کردن کل زمین را و تقسیم بر صد بکنی بینها بدی میشه که اموالو تقسیم کنیم در هر زمین رو هم تقسیم بکنیم بین بی خود جنگنده ها اگه اختلاف شد عمر گفت باز نظام مجزا هستی اون جایه اختلاف شد. خود نظام اختلاف بود علی بن ابی طالب گفتینه به ذیل اختیار مسلمان ها به جزء به شماش هیچ کیتی که اونجا یه یه که آخرش عمر دیدی شو که این نگه دارین. بعد این شد رسمی یعنی شد دستور شدن که اسمش الان آلمانی ویجودی در ماه محرم درسینات تو اراضی مسخوه آنوتن اونجا مطرح میشه. این اراضی همین دیگه چون از راه مسخوهه بود با جنگ گرفته که به و اجاره بدن اجاره که شدن به افراد که بعض ها اسم اراضی حراضی خراجی خراج در دراته هران که زمین های درامت این زمین ها امسطفق این هم مثال اجماعش شد، این هم مثال ها بردان اعرض کنند مثال استثاق شدن هم مثال معروفی که اعرض کردن که اگر زن انتفاع خون شد اما همون قص نکرده یک دست آنو خفتن که این دارد. یه که نه چون تا این که حرام بود استثحاب میکنیم حرمت بود همون زندگی حرام تا قصه بکنه یکی شد برایت یکی شد استثحاب روشن شد زیر برای همه چیه زیر برای همه یک کلمه بود اینا مثالی دیست که در روایات در آیات نیامده یا سالون گهن المهید قول حوامدن فعتذر و نصاف المهید در ایام هید فعتذر و نصاف بعد از ایام حی دیگه نیامده چیزی پس بنابراین اصل مطلب در زمان صحابه این بود و این خوب دفت بکنه. اینا وقتی میگفتن نیست نیست نیست نیست نه اینکه مثل ماه ها که بگیم کشه ایمان و زمانه اینا صحابه بودن و مشکل اصاسیه بود که وسایت رو قبول نکردن زیرگار وسایت هم نمونم نرفتن نتیجه می گفتن سوال می‌کردن چه سو چیزی هست که من به اون هیچی که همین گفتن من چیزی نشدید. خب نه اون رو به عنوان به ها به عنوان حکم سنری حساب میکرد با یه حکم اولی گرفتن. نکته متأ که حکم اولی اهل سنت اونایی که بقول خودشون کمی میخواهد سه اصلا خیلی پرتی پلا نگه چون عمر بیان بگیم صحابه گفت و منکرمه شدن پس صحابه هم قبول کردن این پیغمبر این بیان گفته چیار؟ مثل اون مدره هرشی همه هرشی دادن اونا مقیده شدن همینه اون منتفاشه این اونه که خیلی نیم بخواهد به اصلاح قبول بکن عمر حق تشتیر داره میگن عمر چون بین صحابه گفت و صحابه قبول کردن پس ما من منوزه بوده. این در حقیقت این بوده که زمان خیلی بردن بوده چون صحابه را بیتنه نه چون عمر گفته یکی دشتی میگه دشتا نه چون عمر حتی نه حالا بحث دیگه پس بنابراین به نظر حقی روشن شد که اصل برایت و استصحاب و اینجور چیزها در حقیقت در ریشه های اولیش خرض بر نبودش بود. و این همین نقطه ای که اعتراض بکنه. و شاید تو بوه اعتراض. این اعتراض ایشانم بجاست، این حرف حق واقعاً درسته. ولی زاد ایشانم از حوزه‌ی علم ظاهراً شد، فرض عرض میکنم که بعد از مولا محمد امین استودین نه نهمدن اون راه که اهل رفتن برن. و نه اون راهی که اهل سنت تو استصحاب نه اون راهی که اهل صلی